مصل ششم صبح زود آقای آتسویاشی و آقای آساجی رو کیف به دوش با شکل شمایل مسافرها آمدن و به آقای شیگه مدسو گفتند آیا دوست دارد که اشتراکی استخر پرورش ماهی کپور بسازند؟ گفتند علاوه بر آوکوهایی که از محل پرورش ماهی در روستای تسون کانه ما رو میخریم این بار خودمان به صورت انبوه تخم پرورش میدهیم و در استخر بزرگ اکیامار رها می کنیم. به هر حال به نظر می رسد کپورها از شب هشتاد و هشتم تخم ریزی می کنند. گفت. هنگامی که آب کمی گرم شد، شروع و بسته به درجه آب تا ماه هفتم و هشتم هم تخم ریزی می کنند. برای آموختن نحوه نوزادگیری می خواهیم به محل پرورش ماهی در روستای تسونکان مارو برویم. من و آقای آتسویاشی از الان به روستای تسونکان مارو رویم و یاد می‌گیریم. آقای آساجیرو گفت: به عبارتی ما برای ادامه تحصیل به روستای تسونکان مارو رویم. بعد از اینکه تحصیل کردیم و برگشتیم، با تو سه نفری استخر اشتراکی پرورش ماهی می‌سازیم. ما دو نفر توافق کردیم. تو موافقی؟ شیگه‌ماتسو با تردید موافقت کرد. آموزش در آنجا کاری بود که حداکثر در سه تا چهار روز تمام میشد. این مدت شگماتسو رونویس یادداشت های اتمی خود را ادامه میداد. آقای یا و آساجیرو با کیف سفری که سنگین به نظر میرسید با اولین اتوبوس صبح حرکت کردند. باندازههای شاداب و کاری بودند که به نظر نمیرسید بیمار اتمی باشند. شگماتسو هم دست به کار شد. و برای رونویسی یادداشت های بمباران اتمی بیشتر مایه گذاشت. کنار چشمه آب توی حیات پشتی رفتم. روی آب چتری آفتابی و پشهبندی شناور بود. آن اواخر در خانه ما برای کار بعد از شام در کنار چشمه تختی گذاشته بودیم. ظرفهای غذای روزانه، کتری، و سایر ظرف مورد استفاده را روی آن میگذاشتیم تا وقت حمله هوایی بتوانیم یک طرف تخته را بگیریم و یک بار تمام ظروف روی آن را در آب بیاندازیم. به نظر میرسد همسرم شگکو یک لحظه توانسته است این کار را انجام دهد. سفال شکسته ای برداشتم و روی چتر آفتابی و پشه بند انداختم تا در آب فرو روند. پشه بند کالای با ارزشی بود که قابل مبادله با پنج پیمانه برنج بود پس هر طور شده نباید روی آب می آمد. به اندازه کافی روی آن سفال ریختم. ناگهان دیدم زیر شاخه درخت کیارا که در گوشه از چشم رشد کرده بود کپوری به اندازه سی سانتیمتر و کپور زردی به اندازه هشته تا بیست سانتیمتر با شکم‌های ورم کرده مردند. امکان داشت که بوی تفونشان به سایر چیزها و پشه بند هم سرایت کند. پس آنها را برداشتم و پای دیوار آجری انداختم. شکمشان به نحو عجیبی سفت و ورم کرده بود. آن زمان که از آقای آمی موتاشیگه زو خانه را اجاره کردم به خاطر زلزله بخشی از دیوار ریخت و چند قطعه از کپورهای استخر مردند. از بینشان یک کپور سیاه برداشتم. تشریحش کردم و از دیدن کیسه ی هوای ماهی که مانند بادکنک باد کرده بود، متعجب شدم. این مسئله یادم آمد که ماهی ها وقتی ضربه شدیدی دریافت کنند گویا کار کرده عصبیشان از کار میافتد و کیسه هوایشان از گازی مرکب پر می شود به طبع این احشای داخلی آنها تحت فشار قرار میگیرد عملکرد تمام بدنشان متوقف می شود و میمیرند هنگام کودکی در رودخانه های میانه درره کوه با پتک به صخره ها میکوبیدم و ماهی میگرفتم. این یکی از روش ماهیگیری در رودخانه های زمستانی بود که کم آب میشدند. پک را بسیار بالا می آوردن و با تمام قدرت به سینه صخره ها میکوبیدم. صدای مهیبی میکرد و بوی سوختگی بلند می شد. همزمان از زیر صخره ماهی ها ماهیها بیرون میآمدند و در آب بیرکت می مندند. آن وقت سیدشان می کردیم. فرار نمیکردند زیرا برای مدتی واکنش عصبیشان از کار افتاده بود. خاطره اینکه با ضربه شدید اعصاب ماهی‌ها را فلج می‌کردم در آن لحظه یادم آمد. با این حساب می‌توان گفت وقتی در محل سوار شدم به تراموا در ایستگاه یوکاگاوا بودم، بدنم به غیر از نور مدور و موج انفجار چیز دیگری را احساس نکرد. های داخل آب مردند. ستون‌های بزرگ سنگ خراب پرد و دیوارها سوراخ شدند. پس بند آمدن نفس انسان روی زمین چیزی عجیب و رازآلود نبود اینکه ماهی به نسبت انسان در برابر صدا پوستی به مراتب حساستر دارد امری مسلم است اما این را که گلوله نورانی چه نوع بمبی بوده و چه نوع مواد شیمیایی در آن به کار رفته است نمیدانستم و دوچار استرس بودم در حالی که چشم را به اطراف میچرخاندم گشت زدم خانه های آقای نورا و آقای نکانیشی، همسایه های روبرو، آقای نیتا، همسایه غربی و آقای میاچی، آقای اوکوچی و آقای سوگایی را در سمت شرق نگاه کردم. یک نفر هم در خانه ها نبود. خانه های پشتی را هم دیدم. میان همسایگان، همسران آقای نجیما، شیمورا و میاچی که همراه یاسوكو آزمه فروعه شده بودند، باید سالم می بودند. تمام خانه ها بیش از پانزده درجه کج و خالی از سکنه شده بود. با اینکه چند بار آقای میاچی را که مدتی قبل همراه هم بود صدا زدم، اما هیچ جوابی نیامد. خانه آقای ناکامورا در هم شکسته بود. آقای ناکامورا؟ آقای ناکامورا؟ صدا زدم اما جوابی نیامد. برای شنیدن ناله ضعیف هم گوشتیز کردم، اما چیزی نشنید. چون خانه ها به نسبت راحت می ریزند و خانه های فرو خیلی کم به وسیله سفالهای سقف پوشیده می شوند با صدای بلند آقای ناکامورا، بچه آقای ناکامورا، همسر آقای ناکامورا را صدا زدم اما جوابی نیامد خانه های فرو از خانه های خالی از سکنه کمتر و مانند جزیره با آنها احاطه شده بودند به نظر می رسید همسایه ها همه آواره شدهاند درها باز مانده بود و مانند خانه‌های مسیری که مدتی قبل از آن آمده بودم مانعی برای جلوگیری از دزدی وجود نداشت. پیشتر با اشتیاق فراوان با همسایه‌ها تمرین آتش کرده بودیم. اما امروز آن تمرینات هیچ سودی نداشت. کسی برای دست به دست کردن سطل، نگهبانی و حمله به آن نبود. به نظرم آمد آنچه تا کنون انجام می‌دادیم عروسک بازی کودکانه ای. احساس کردم زندگی خودم هم تا آن لحظه زندگی عروسک خیمه شببازی بوده. به هر حال همه چیز عروسک بازی است. نباید امیدی داشت. بسیار خوب. هرگز آن را نشان نمی دهم. این را با خودم گفتم. به خانه برگشتم و به جاهایی سر زدم که صفال آنجا به جا شده یا ریخته بود. صفالهای صخف شمالی به طور کامل ریخته، در قسمت جنوبی حداکثر 20 قطعه سفال باقی مانده و از استفال هایی که وقت تعمیر خودم با رشته مسی محکم کرده بودم فقط یکی بر جای مانده بود. روی دیوار فرو افتاده ی کنار چشمه چوبی به درازای حدود 3 متر و ضخامت 12 سانتی متر قرار داشت. سه چوب گرد هم به درازای 2 متر روی دیوار افتاده بود. بدون شک چوب های چوب فروشی با گذشتن از باغ کشاورزی دانشگاه هیروشیما به اینجا پرد شده بودند. شگفت زده شدم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. آن چوب و چوبهای گرد را به عنوان تیرک نگهدارنده ی خانه کچ استفاده می کنم. از دید منطقی چوب هممال خانه فشاری را که برای سقوط خانه وارد می شود با سرسختی تحمل می کند و مانع افتادن آن می شود. تیرک هممال خانه چیزی مفید به نظرم رسید. وقتی برای پیدا کردن چوبی دیگر از قسمت افتاده دیوار بیرون را نگاه کردم جوانی را دیدم که روی کندهی نشسته بود و داشت دوباره پاتابه اش را میپیچید پیچید. دانش آموز هنرستان صنعتی هیروشیما بود که گاهی سرزده به ملاقات همسایه کناریمان می آمد. هاشی زومه، چطوری؟ وقتی پرسیدم ناگهان برگشت و گفت بله خانه امت خانم نیتا چه شده است؟ چون پرسیدم به من خیره شد و گفت بله از قسمت فرو ریخته دیوار با گام های بلند بیرون آمدم به نظر می‌رسد از مدرسه فرار کرده ای مدرسه چی شد زخمی که نشده ای؟ ساختمان مدرسه ریخت دوستانم همه زیر آوار ماندند کسانی هم که بیرون آمدند به شدت زخمی بودند با صدای بیاحساس حرف می‌زد هاشیزومه از اقوام همسر آقای نیتا بود. معمولاً جوانی سرزنده و بشاش بود، اما اکنون سردرگم، پریشان و گیج شده بود. چون پریشان و ماب هم حرف میزد، زیاد چیزی نفهمیدم، اما ظاهراً زیر میز یا صندلی بوده. بعد از بین آنها گذشته و چهار دست و پا خارج شده است. گفت: وقتی برگشتم هیچ کس نبود. هنوز که آتش به اینجا نرسیده، باید افراد خانه را پیدا کنی. افراد این محله به زمین ورزش دانشگاه پناهنده شدند. شیگه کو همسر من هم در زمین ورزش است. تو چه میکنی؟ میایی آنجا را هم نگاه کنی؟ گفت بله و دنبال من آمد. زمین ورزش مملو از پناهندگان و مجروحان بود. وقتی از میان ازدهام جمعیت رد شدیم و کنار استخر رفتیم همسایه من همسر آقای اوکاوچی کنار شیگه کو بود. هی! هاشی زومه! همسر آقای اوکاوچی به دانش آموز گفت. وقت بدشانسی فقط مصیبت است نه؟ واقع متاسفم. امت با شوهر امت آقای نیتا با هم به بیمارستان خیریه رفتند. ظاهران خانم اوکاوچی با چشمانش دیده که امه او زخمی شده بود. برای بدرقه سربازان آزم جبه همراه خانم نیتا کنار جاده ایستاده حرف می زدند که آن جهش نور غیر منتظر رخ داده و موج انفجار برخاست. سفالی پروازکنان آمده، و گوشت گونه خانم نیتا را کنده بود. همینطور او به بیمارستان خیر گرفت. آن سفال مانند کاغذ زخیمی که کسی در هوا رها می کند، فضا را شکافت، جلو آمد و کاملا به گونه خانم نیتا حسابت کرد. همسر آقای آکاوچی متولد توکیو است و وقت زلزله بزرگ کانتو با زلزله روبرو شده بود. هرچند آن زمان دانش آموز ابتدایی بوده اما به نظر می خطر صفال را شناخته بود. وقتی زلزلهی بزرگ شروع به لرزاندن می کند، به آسمان پرتاب می شوند. مانند کاغذ زخیم فضا را می شکافند و سی تا پنجاه متر پرواز می کنند. خانم اوکاوچی همچنین گفت که نمیداند نور مدور و موج انفجار این بار چگونه فشاری قوی به صفال وارد کرد. هاشی زومه که سرانجام به خود آمده بود آهسته آهسته شروع به گریزتن کرد پس به بیمارستان خیریه میروم، بسیار ممنونم همگی سلامت باشید این را گفت به زور پنج ین به عنوان هدیه خداحافظی از همسر آقای اوکا گرفت اطراف استخر را ترک کرد و رفت من و شیکه با هم مشورت کردیم و بنابر این شد هر طور شده با شعبه ی نقل جاپان در اوجینا تماظ بگیریم. به تصور ما اگر یاسوکو میخواست با کامیون از فروعه به هیروشیما برگردد، نمیتوانست به شهرک سندا برسد. دلیلش این بود که در سمت شرق شعلاهای آتش بسیار ترسناک زبانه میکشید. شاید هم فکر کنند شهرک سنده سوخته است. با این همه خوشبختانه آنها به وسیله آقای نجیما راهنمایی نمایی میشوند. پس بیگمان دور راه زمینی را خط خواهند کشید و با قایق به اوجینا خواهند آمد. پیشترها آقای نجیما گفته بود وقتی هیروشیما مورد حمله هوایی قرار گیرد من با قایق ماهیگیری از اوجینا به میازو فرار خواهم کرد. به همین دلیل همیشه با ماهیگیران اوجینا و همچنین با ماهیگیران میازو قول و قرار میگذاشت که به او قایق اجاره دهند. از صحت چنین آینده نگریی شدم. حتما آقای نجیما با قایق به اوجینا خواهد آمد فکر نکنم با دیدن آن شغله های آتش از راه زمینی برگردد شاید هم نتواند برگردد به هر حال اگر به اوجینا برسند احتمالا یاسوکو قبل از هر کاری به شعبه حمل و نقل ژاپن در اوجینا سر خواهد زد بنابراین امروز باید تا عصر قبل از هر اقدامی با شعبه حمل و نقل در اوجینا تماس بگیریم وظیفه است که این کار را بکنیم یاسوکو این را میداند حتما به حمل نقل اوجینا خواهد آمد همسرم این گفته مرا تایید کرد و برای رفتن به شعبه حمل و نقل اوجینا آماده شدیم اما آمدن یاسوكو به اوجینا چندان هم قطعی نبود پس رفتن ما قمار بود شیگکو مقابل استخر کف دستهایش را بر هم قرار داد و برای مدت کوتاهی خاموش دعا خواند همسر آقای اوکاوچی گفت اگر یاسوكو به اوجینا سر بزند خیلی خوب است اما من دو دل و مردد هستم ظاهرا این خانم با شوهرش که در بانک کار می کرد. اطراف این استخر قرار ملاقات داشتند. آنها پسری داشتند که دانش ها دانشگاه بود و برای خدمت زیر پرچم به جایی به نام پلم بانک در سومت اعزام شده بود. شیگه کو تکه های کوچکی از دیوار آجوری را در قابلمه و کتری گذاشت و آنها را در استخر غرق کرد. قابلمه لغزید و در آب پایین. تصمیم داریم زمانی برای برداشتن این قابلمه و کتری بیاییم. آن وقت خوب است برسد نه؟ وقتی من این را گفتم، خانم اوکاوچی گفت واقعا خوب است. هر دو نفرتان به سلامت. به یاسوکو سلام برسانید. من و شیگکو از زمین ورزش به پل میوکی رفتیم. روی بینی و دهان نعشی در بخش شمالی پل نگس زیادی به شکل توده سیاهی جمع شده بودند از گوش های جنازه لخته های خونی بزرگی بیرون زده بود جوری که نمیشد گوش را وسط خون تشخیص داد وقتی قدم هایم را تندتر کردم تا زودتر از آنجا رد شوم کو از پشت سر گفت یک دقیقه به خانه سری بزنیم شاید در نبود ما یا به خانه برگردد. برویم یادداشتی بگذاریم به خانه برگشتیم و وقتی داشتیم دنبال کاغذی میگشتیم ناگهان یاسوكو برگشت. شیگه کار روی تاتامی زانو زد و گریست، خورده شیشه بر تاتامی پاشیده بود، یاسوکو به نردهی راه رو تکیه داد، بدون اینکه که کود اش را در بیاورد و در حالی که پارچه زده حملات هوایی بر سر داشت، از خوشحالی حق هق هقه گریه می کرد هی، hey, صورتت رو پاک نکن به یاسوکو اختار دادم به دستت زغال یا چیزی نچسبید. وقت خوبی برگشتی، داشتیم برای جستجوی تو به شعبه حمل و نقل اوجینا جینا می رفتیم. چون یا سوکو پیش ما امانت بود، اگر مشکلی پیش می آمد نمی توانستیم در چهره پدر و مادرش نگاه کنیم. چون یا سوکو به هیروشیما آمده، مسئولیتش به عهده من بود. دختران جوان، چه در شهرستان، چه در شهر بزرگ، برای انجام خدمت اجباری اغلب تبدیل به یکی از زنان کارگر کارخانه می شدن. و مجبور بودند پوکه های گلولهای توپ را چکش کاری کنند یا سنباده بزنند خوشبختانه من در کارخانه فروی چی کار می کردم و برای همین توانستم با زرنگی یاسوکا جذاب را با رئیس کارخانه آشنا کنم یاسوکا صورت من را دید گفت وای صورت امو چی شده گفتم فقط کمی سوخته با توجه به نقل قول های یاسوکا آقای نجیما در میازو قایقی تهیه کرده و آنها را زیر پل میوکی در ساحل راست رودخانه کیو پیاده کرده بود آقای نجیما همسرش را در خانه پدرش در فروعه باقی گذاشته و همراه همسر آقای یاشیمورا همسر آقای میاچی و همسر آقای دوئی برگشته بود آقای نجیما گفته من مسئولم و همه شما را تا خانه میرسانم و بعد از صحبت با ماهیگیری در میازو قایقی تهیه کرده بود. یک بخش پیشبینی که مدتی قبلتر کنار استخر کرده بودم درست از آب درآمد